از گردش این ی دون پرور با صد غم و درد میبرم عمر بسط چون قنچه به گلزار و جهان با دل تنگ چون لاله باغ دهر با خون جگر ایام جوانی است شراب اولاتر با خوشبسران با دینا و اولاتر این عالم فانی چو خراب است واب از باده درو مست و خراب اولاتر ای در طلب تو آلمی در شر و شور، در پیش تو در بیش و توانگر همه اور، ای با همه در حدیث و گوش همه کر، و ای با همه در حضور و چشمه همه کور. با صفله تند خود و بی زینهار، مخور باده که رنجا ردبار، بدمستی و شور و اربده در شب ایش در دسر و عوض، خواهیش روز خمار.